گرامیان درود بر شما فایل آوایی پنجم از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 55 و هفته چهار ادامه برهان علیت مفهوم پدیده مومن به چهره ناباور که در حال نوشیدن نوشیدنیش بود نگاه کرد و گفت دیگر چهرت شبیه هفته پیش نیست. ناباور، مگر هفته پیش چگونه بودم؟ مومن، زمانی که بحث به مفهوم عدم رسیده بود، چهره متفکری داشتی. فکر کنم بد جوری ذهنت درگیر بود. الان به نظر می رسد که یا مسئله برایت روشن شده، یا اینکه مسئله را به کلی دور انداخته ای. ناباور، شاید هم برای چند دقیقه مسئله را فراموش کردم تا نوشیدنیم تمام شد. مؤمن خندید و گفت: بله، اقلا این هم غیرممکن نیست. حالا بگو ببینم با مفهوم نیستی چه کردی؟ ناباور. می توانم بگویم که برایم حل شد. ابتدا یک فضا مثل این فضای جلوی خودمان را در نظر گرفتم. سپس اشیاء آن را حذف کردم. بعد نور و روشنایی را هم حذف کردم. سپس ابعاد را هم حذف کردم. اینجا بود که فکر کردم به مفهوم نیستی رسیده. اما متوجه شدم هنوز دارم چیزی را تصور می کنم و آن یک بی مکانی زمانمند بود. نه جسمی وجود داشت نه نوری و نه بعدی. اما هنوز بر این ظاهرا هیچ چیز زمان در حال گذر بود. گویی که این ظاهرا هیچ چیز می آنقدر دوام بیاورد تا شاید در برهه‌ای از زمان دوباره ابعادی به وجود آید و شیعی در آن ابعاد جای گیرد اینجا بود که فهمیدم من هنوز مفهوم واژه عدم را نفهمیدم آدمی که دارای زمان باشد و زمانش در حال طی شدن باشد هنوز عدم نیست بلکه هنوز برای خودش چیزی است تازه فهمیدم که چرا اگر به هر شکلی برای عدم تصوری داشته باشیم دچار خطا شده ایم. تازه فهمیدم که چرا عدم نمیتواند به هستی منتهی شود ادم یک راز نیست و پتانسیل آن را ندارد که به چیزی منتهی شود چرا که اصلا وجود ندارد تا بخواهد پتانسیل ایجاد هستی را داشته باشد یا نداشته باشد متقاعد شدم که ما فقط میتوانیم از هستی صحبت کنیم و هر صحبتی از عدم چیزی جز خطا در درک معنای عدم نیست حتی نمی توان در مورد عدم حرف زد و حتی نمی توان در مورد عدم گفت شاید زمانی عدم به هستی منتهی شود حتی اگر در کلاممان به عدم اشاره کنیم و چیزی را به آن نسبت دهیم به این معنی است که آن را عدم نمیدانیم و معنای واژه عدم را درک نکرده ایم. فقط و فقط از هستی می توان سخن گفت مومن بسیار خوب پس می استدلال را ادامه دهیم اجازه بده از این به بعد به هر چیزی که نبوده اما به وجود آمده است پدیده بگوییم پاورقی در این کتاب از کلمه پدیده تنها به معنایی که گفته شد استفاده خواهد کردید اما در فلسفه و فیزیک معاصر از کلمه پدیده یا فنامنان به معنی چیزی که به وسیله حواس درک می شود استفاده می‌کردند ادامه مطلب به عبارتی پدیده چیزی است که بی‌آغاز و ازلی نیست یعنی چیزی است که اصطلاحا مسبوق به عدم است و این طور نیست که همواره از عزل بوده باشد مثلا این قاشق را در نظر بگیر. این قاشق قبلا نبوده ولی روزی به وجود آمده است پس این قاشق را پدید می‌نامیم حال این قاشق را که درون بشقاب می‌گذارم در نظر بگیر؟ من آن را درون بشقاب می‌گذارم پیش از این این قاشق درون بشقاب نبود این قاشق وجود داشت اما درون بشقاب نبود قاشق درون بشقاب چیزی است که تا یک دقیقه پیش نبود ولی حالا هست. این قاشق در این لحظه خاص که درون بشقاب است پدیده ای است که پیشتر نبود. قاشق درون بشقاب یک پدیده است که نبود ولی حالا وجود دارد. حالا این قاشق را که از نظر مختصات مکانی در این بشقاب قرار دارد. و مختصات مکانیش ظاهرا تغییر نمی کند در نظر بگیر و به این فکر کن که به هر حال مختص زمانیش در حال تغییر است. قاشق درون بشقاب در لحظه تی یک یک پدیده است که نامش را پدیده علف می گذاریم. قاشق درون بشقاب در لحظه تی دو یک پدیده جدید است با مختصات جدید که نامش را پدیده بی می گذاریم. مختصات مکانی پدیده ب، ظاهرا همان مختصات مکانی پدیده علف است، اما به هر حال مختص زمانیش تغییر کرده. لذا پدیده دیگری است که در لحظه t1 وجود نداشت و در لحظه t2 به وجود آمده است. شاید این قاشق سه دقیقه دیگر هم وجود داشته باشد و مختصات مکانیش تغییر نکند. و همچنان داخل پشقا به مقابل من باشد و فقط مختص زمانیش تغییر کند. شاید هم اصلا تا سه دقیقه دیگر بلایی به سرش بیاید و دیگر قاشقی با این مختصات مکانی و شکل و ظاهر وجود نداشته باشد. به هر حال هر پدیده یا رویدادی اگرچه از نظر ظاهری شبیه پدیده یا رویداد دیگر باشد. و برای ما این تصور را به وجود آورد که پیش از این هم وجود داشته اما در حقیقت هر پدیده‌ای مختصات زمانی و مکانی منحصر به فرد خود را دارد و یک هستی منحصر به فرد است که پیش از آن نبوده و پس از آن هم نخواهد بود این خصوصیت همه چیزهای زمانمند است نابابر آیا میخواهی درباره مفهوم زمان صحبت کنی؟ مؤمن به هیچ وجه، فقط میخواهم درباره مفهوم پدیده صحبت کنم. خواستم بگویم هر لحظه از هستی من و تو و هر چه میبینیم و میشناسیم یک پدیده است که پیش از آن نبوده و مسبوق و عدم است و در آن لحظه که هست به وجود آمده. در اینجا من اصراری ندارم که تو حتما قبول کنی یک قاشق در هر لحظه به وجود می آید و وجودی نو پیدا می کند. تو می توانی این را نپذیری اما می خواهم در نظر داشته باشی در صورتی که واقعا این قاشق در هر لحظه وجود جدیدی پیدا کند آنگاه می توان گفت که در هر لحظه یک پدیده جدید از نیست به هست آمده است. خلاصه اینکه هر آنچه نبوده و به وجود آمده یک پدیده است. تو میتوانی برای پدیده مثالهای بیشماری بیاوری. برید. بسیار خوب. من با مفهوم پدیده مشکلی ندارم. پدیده را هستی میدانم که نبوده ولی به وجود آمده است. مثلا الان که من در حال نگاه کردن به تو هستم، دقیقا خود این نگاه و تصویری که از تو دارم یک پدیده است که در لحظه پیش وجود نداشت ولی الان به وجود آمد. کلماتی هم که در ذهن من تشکیل می شوند هر کدام یک پدیده هستند. افکار من هم پدیده هستند. صداهای هر کلمه هم که به گوش من میرسد نیز نیست هر کدام پدیده هستند. مفهومی که پس از شنیدن کلمات تو در ذهن من شکل می گیرد و معنایی که از حرف‌های تو میفهمم هم پدیده است. یعنی آن حس فهم که هر لحظه در من ایجاد می شود هم یک پدیده است. چرا که قبلا نبوده و الان به وجود آمده. لحظه یادآوری یک خاطره نیز یک پدیده است. مومن. دقیقا همینطور است. ما بر سر معنی پدیده آنطور که من در نظر دارم تفاهم داریم؟ و بعد از این کلمه پدیده را در بحث خودمان با همین معنی به کار میبریم و با معانی دیگر این کلمه کاری نداریم ناباور حالا چه احکامی را قرار است درباره این پدیده جاری بدانیم؟ عنوان پدیده چگونه به وجود می آید؟ مامن یک پدیده از آنجایی که ازلی نبوده بلکه به وجود آمده پس از لحاظ نظری از سه حال خارج نیست یا این پدیده از عدم به وجود آمده یعنی محصول عدم است یا خودش خودش را به وجود آورده است یا هستی دیگری آن را به وجود آورده است اکنون سعی می‌کنیم که با انایت به معنی وجود و عدم این سه حالت را بررسی کنیم تا ببینیم از نظر منطقی کدام یک ممکن و کدام یک غیر ممکن است حالت اول یعنی اینکه پدیده از عدم به وجود آمده باشد گفتیم که عدم چیزی نیست که بتواند و یا پتانسیل آن را داشته باشد که پدیدهای را به هستی آورد اینکه ادم هرگز پتانسیل و توانایی خلق چیزی ندارد را می توانیم با اطمینان بگوییم زیرا عدم چیزی نیست که بخواهد توانایی داشته باشد یا نداشته باشد به عبارتی اینکه که بگوییم پدیده‌ای از عدم به وجود آمده است یک گزاره غلط است زیرا هیچ توانایی و هیچ امکان و هیچ فعلی را نمیتوان به عدم نسبت داد در واقع عدم یا نیستی چیزی جز یک کلمه نیست و این کلمه به هیچ چیز واقعی اطلاق نمیشود. لذا جمله آن پدیده از عدم به وجود آمد جملهای است که هرگز در واقعیت تحقق نیافته و نخواهد یافت اینکه تصور کنیم ادم سپری می شود و ناگهان پدیده به وجود میآید و به هستی پا گذارد نیست ناشی از درک اشتباه مفهوم عدم است ادم چیزی نیست که بتواند سپری شود یا نشود ادم نمیتواند به اتمام برسد و ناگهان هستی به وجود آید یعنی ادم تمام شدنی هم نیست ناباور نمیتوانم با این قسمت مخالفت کنم و فکر میکنم کاملا درست است ممن حالت دوم این است که پدیده خودش خودش را به وجود آورده باشد پدیدهای که هنوز نباشد عدم است یعنی نیست و در نتیجه باز هم پتانسیل هیچ چیز را ندارد من جمله که بتواند خودش را به وجود آورد پدیده تا وقتی که نیست نمیتواند خودش را ایجاد کند و وقتی هم که به وجود آمده باشد دیگر معنی ندارد که خودش را به وجود آورد بنابراین جمله آن پدیده خودش خودش را به وجود آورد با جمله آن پدیده از عدم به وجود آمد مطابق است و هر دو در عالم واقع بیمعنی و منطقن غیر ممکن هستند اما حالت سوم یعنی اینکه هستی دیگری پدیده را به وجود آورد این حالت به لحاظ منطقی بلا اشکال است و در واقع تنها حالت نظری بلااشکال محسوب می شود. بنابراین هیچ ای وجود ندارد مگر اینکه هستی دیگری آن را به وجود آورده باشد مؤمن ساکت شد و منتظر عکس العمل ناباور ماند ناباور با چشم بسته در حال فکر کردم. پس از چند دقیقه چشمانش را باز کرد و گفت چند حالت را پیش خود در نظر آوردم تا اشکالی به حالت سوم وارد کنم اما هر بار دیدم که هر اشکالی به حالت سوم مرا به سوی قبول حالت اول و دوم سوق می‌دهد که هر دو غیر ممکن هستند و آن هم تنها به یک دلیل است به این دلیل که مفهوم عدم ایجاب می‌کند منطقاً حالت اول و دوم غیر ممکن باشد غیر ممکن بودن حالت اول و دوم هیچ ارتباطی به کمبود دانش ما ندارد اینطور نیست که شاید روزی دانش ما نشان دهد عدم می تواند ای را به وجود آورد چرا که دانش و تجربه ما همواره هستی را مورد بررسی و مداقه قرار میدهد حتی اگر با خلق ظاهراً بی علت یک پدیده مواجه شویم، باز هم نمی بگوییم که هیچ منجر به خلق آن پدیده شده است. هیچ یعنی نه ماده و نه غیر ماده، نه مکان، نه گذر زمان و نه هیچ چیز دیگر. ما هرگز نمی توانیم عدم را زیر نظر بگیریم تا ببینیم آیا منجر به خلق پدیده می شود یا نه. حتی اگر ببینیم ذره ای بدون نیاز به ذرات دیگر به وجود بیاید، باز هم نمیتوانیم این را به عدم نسبت دهیم. چرا که آنچه مورد بررسی ما بوده، تا ببینیم آیا میتوانسته منجر به تولید یک ذره شود، فضای خالی و زمان در حال گذر بوده و این دورا نمیتوان هیچ پنداشت، یعنی شاید حتی فضای خالی و زمان در حال گذر به خلق چیزی منجر شدن. اما در این صورت هم نمیتوانیم بگوییم آن چیز از عدم به وجود آمده است اصلا هیچ را نمیتوان مانیتور کرد و تحت بررسی قرار داد و تلاش برای درک این کلمه نیز حاصل عدم شناخت مفهوم هیچ یا نیستی است می بگویم که مفهوم کلمه عدم باعث شد بحث ما از تجربه و مشاهده بی نیاز شود همانطور که نیازی نیست مفاهیم ریاضی را لزوماً با تجربه و مشاهده ثابت کنیم. ما بدون تجربه دو به دو با چهار هم می توانیم با اطمینان بگوییم دو به دو با چهار. با این حال اجازه بده به این سه حالت بیشتر فکر کنم و بقیه بحث را هفته آینده پی بگیریم. مومن ولی ما باز هم تازه بحث را شروع کرده بودیم. نابابر درست است. اما بررسی این سه مهمتر از آن است که سریع از آنها عبور کنیم میدانم که قرار است حالت سوم بنای اصلی برهان علیت باشد من نمی خواهم پیش از محکم کردن این قدم قدم بعدی را برداریم اگرش همیشه و تا آخر عمر حق بارها و بارها بازگشت به قدمهای قبلی و بررسی دوباره و دوباره آنها را برای خود محفوظ نگه میدارد مؤمن هر جور تو بخواهی. گرامیان همینجا در صفحه شست فایل آوایی پنجم از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه تا درودی دیگر بدرود